بسم الله الرحمن الرحیم ای را برو بر چار قسم بود رفت نست جرجز تمام علایمش رو خوندیم و این را هم خواندیم که چه علامتی مخصوصه کدام کلمه هست در رابطه با مبنی ها کتاب چیزی نگفته بود یعنی از آن جایی که کتابی بسیار مختصر در رابطه با کلمات مورد بحث کند و اعرابشون حالا اومده ایم رسیده ایم به این بحث که خوندیم کلمه که مرفو شد اگر اسم مفرد بود مثلا زمه میگرد اگر مسننا بود علف اگر جَم مذکر سالم بود واف اگر اسمای خمسه بود واف حالا که چه زمان این کلمات مرفوع هستن چه زمان منصوب هستن و چه زمان مجرور چون اسماها فقط سه اعراب داشتن چند اسم چند اعراب ستا کتاب بسیار بسیار نافع باب و مرفوعات الاسماء رسیدین به باب مرفوعات اسمها یعنی اسمهایی که مرفوع هستند المرفوعات سابعتون کلماتی که ایرابشون رف هست مرفوعات مشوان حفته هستند و هی ابارتند از الفاعل فاعل مانند نصر زیدون یاریداد زیده زیدون در این مثال فائل هست مرفوع هست علامت رفزمه نصار زیدانی نصار فعل زیدانی فائل مرفوع با علف چون مصنه هست نصار زیدونه نصار فعل زیدونه فاعل مرفوع با واب چرا؟ چون جمع مذکر هست هر کلمه ای علامت رحی دارد که اینو خوندیم و باید تکرار شود پس مرفوعات هفت تا هي وهي و هی الفاعل و فاعل لم یسم فاعله مفعول کفائله نام برده نشوده یا هم نائب فاعل پس دو نائب فاعل فعل های معلوم فاعل دارند و فعل مجهول نائب فاعل مانند نصر زيدون بکرا جاری کرد زید حالا اگر بخوایم فیل رو مجبور کنیم میگیم نصیره بکرون بکر یاری کرده شد کی یاریش کرده مشخص نیست قتلت الحیتو مار کشته شد فتحه البابو باب باز کرده شد پس دومین مرفو نائب فایل هست مبتدا او سو سومی مبتدا هست و خبروه و چهارمی خبر مبتدا. مانند زهیدون آلمون زید مبتدا مرفو با زمه آلمون خبر مرفو با زمه محمدون مجتهدون محمد مجتهد هست مبتدا و خبر و اسم مکان و, و اخواتی ها پنجومی هم اسم کانه و اخواتش کانه یک سری اخواتی دارد که در درس خودش اونا رو بیان خواهد کرد سه امسان وله باته ساره کانه و اخواتش چون فعل ناقص هستند دیگه فائل و مفعول ندارن بلکه اسم و خبر دارند اسم چی دارند خبر دارند کان الله عزیزن الله اسم کانه مرفوع با می عزیزن خبرش منصوب صوب بافت وَلَّ وجهو مُصُوَدَّن وَلَّ از اخوات کانه وجهو اسمش مرفو بازمه مصودن هم خبرش منصوب پس پنجمین نوع مرفو خبر اسم کانه هست چی و خبر ان و اخواتش اِنَّ زیدن عالمون ترکیبش تونین هست اِنَّ حرف مشبه بالفعل زیدن اسمش منصوب با فتحه آلمون خبر ان مرفوع علامه طرف ضمه. پس در کان اسم مرفوع بود خبر منصوب اینجا برعکس اینه و اخواتش اسم رو منصوب میکنند و خبر را مرفوع خبرشون جز مرفوعات هست. و تابع المرفوع و هفتومی هم اونی که تابع مرفوعی باشد تابع مرفوع مرفوع هست تابع مرفوع مرفوع هست مثلا موقعی که میگیم جا از زیدون جا ار رجلون اومد مرد حالا اگر صفتی براش بیاوریم مرفوع میشه میگیم جا ار رجلون کریمون رجلون میگیم فائل مرفوع بازن به کریمون صفتش هست از اون جایی که مطبوع یا موصوف مرفوعه کریمون هم مرفوعه ولی اگر مطبوع منصوب بود اون هم منصوب میشد رأیت و رجلن کریم هست پس طابعه مرفوع مرفوعه تابع منصوب منصوبه تابع مجرور مجروره کدوم ها هستند و هوا اربعه تو اشیاه توابه تا هستند النعت وصف ماننده جا رجلون کریمون که کریمون نعت هست عطف که خودش بردونو هست بیان بیانو عطف نسق عطف بیان مانند جا امیر المؤمنین عمر عطف نسق هم ماننده جا از زیدون و بکرون توکید که همون تأکید هست مانند جا از زیدون نفسو اومد زید خودش که بعدن اینا را با تو مفصل خانده می و البدل و بدل مانند جا صدیقو که اومد دوست زید یا جا از زیدون صديقوك. جا زیدون صدیقو که میگیم جاء فعل زیدون فائل صدیقو که همون صدیقو بدل هست پس به همین صادقی بود مرفوعات حفظا بودن اما میرویم اولین مرفوع رو میخونیم باب الفاعل. باب بعدی چاست؟ فاعل فائل هست و هو الاسم المرفوع فائل میگه اسم مرفویه هست بله فائل مرفویه دیگه منصوب و مجروب نیست المذکور قبلهو فعلو فعلش قبل از خودش ذکر شده فعلش قبل از خودش ذکر شده مانند جاعت الساعة ساعة جاعت الساعة تو ساعة میشه فائل اسم مرفویه هست فعلش هم قبلش ذکر شده نمیشه که بعد از فایل, فایل بیاد نمیشه همیشه اول فعل میاد بعدش فایل حالا چه ظاهر چه مزمر اونش خودش میگه و هو علا قسمین و فایل بر چند قسمه؟ بر دو قسم ظاهرون یک ظاهر و مضمر دو مزمر فالظاهر نحو قوله ظاهر معنی این مثال قام زیدون قام میگیم فیل مازی مبنی برفتح زیدون فائل مرفوع علامت رفت زمه که اسم ظاهر هست یا یقوم و زیدون فیل قام از زیدان میخواد بگه اگر فائل اسم ظاهر بود چه مفرد بود چه مصنع بود چه جمع بود فیل مفرد بکار میره این واجبه جا از زیدون جا از زیدان جا از زیدون قام الزیدون، قام الزیدان، قام الزیدون حال فعل مازی باشه چه مزاره فرقی ندارد يقوم الزیدان، قام الزیدون، يقوم الزیدون قام الرجالو اینجا جمع مکسر آورده یقوم الرجال، فعل، با فعل مزاره آورده قامت هندون، تقوم هندون ماضی و مضارع چون فاعل مؤنثه فعل هم شکلی چیکار رفته مؤنث قامت الهندات هندانی اینجا فاعل ما مصنح است هندانی یعنی دو تا هند ولی فعل باز هم مفرد هست تقوم الهندان این فعل مضارع قامت الهندات فلان شدند هند ها تقوم الهندات تقوم هنود جمع مکسر است قام اخوك يقوم اخوك قام غلامی و یقوم غلامی و ما اشبه هذالک امثل مختلف رو برای فائل که اسم ظاهر بود آورده بود ببینید باید این نقطه در ذهنمان باشد هرگاه فائل اسم ظاهر بود فعل به شکل مفرد بکار میده فعل به شکل چی بکار میده؟ حالت چی؟ مصنع باشه چی امسان رو دیگه آورده بود چی جمع مکسر باشه چی جمع موننس سالم باشه هر طور که باشد فعل به شکل چی بکار میدود مفرد بکار میشه چی در ماضی چی در مزاره فرقی ندارد این بود از از زمانی که فائل ما اسم ظاهر بود نقطه ای رو در مورد تنیس ناورده است زمانی که فائل معس حقیقی باشه و فاصله ای بین فعل و فائل نباشه فل میشه به شکل بکار به کار میره. مانند قامت هندون ج میتونیم بگیم قام هندون ولی اگر معص غیر حقیفی می بود ما میتونستیم فعل به شکل مذاکر رو کار بریم و می تونستیم بهشک مع یا اینکه ف؟ مذکر حقیقی بود ولی بین فعل و فاصله اومده بود باز هم فعل رو بیده شکل جائز بود بکاربریم. بریم مزاکر یا معنیس میتونیسیم بگیم طلعه الشمس و میتونیم بگیم طلعه الشمس خب این نقطه رو کتاب ناورده بود بخاطرین من مختصر ذکر کردم اما زمانی که فایل زمیر باشه میگو والمود مغو اثنا عشر زمیر دوازده تا هست نحو قولک البته بدون تکرار ودرب ودرب ودربو ودربو تو، و و ضربت و ضرب و و اینها فاعل مزمر بودند. یعنی فاعلی که زمیر هستند. خب در این مثالها در ضرب تو فاعل چه هست؟ تو هست. محلن مرفوم می‌گیم. در ضرب نا هست در ضرب تفاعل تا هست در ضرب تی تی هست در ضرب توما هست در ضرب تمتم هست در ضرب تن تن در زربا فائل میتونه هوای مسترتر باشه و میتونه هم اسم ظاهر باشه میتونیم بگیم ضرب زیدون فاعل زیدون هست میتونیم بگیم زیدون زربا که در زرابا هوی هست که بزاید قبلی بر میگرده اینجا مستتر است. در زرابا به هی مثل هیمه است فقط فرقشونی است که این برای مهندس و اون برای مذکر در زرابا فائل الف هست. زرابا میگیم زرابا فل با فائلش الف فائل هست محلن مرفود. زرابو واب در زرابن نون. پس فائل و بحثش رو گفت یا به شکل اسم ظاهر میاد یا به شکل موزمر میاد که مزمر دوباره خودش بر دنو هست یا مستتره یا بارس اینایی که اینجا خوندیم بغیر ضربا و ضربت مالبقی همه بارزن دیگه نه و مستتر خودش بعدا بردولو هست وجوبی و جوازی که اون بحث ساده ای هست پس این بود از بحث فائل فائل اون اسم مرفوی است که بعد از فعل میاد این نقطه رو بدونیم هیچ فعلی نیست الا و مگر این که فائلی دارد تون فعل با فائل انجام میدیره موقع میگیم ضربه زد کی زد اونی که زده بهش میگن فاعل نصر یاری داد اونی که یاری داد بهش میگن فاعل کتب نوشت اونی که نوشت میگن کی کتب زیدت پس زید میشه فاعل کتب زیدان زیدان میشه فاعل فتح علیون البابه باز کرد کی باز کرد علی علی میشه فتح تو، باز کردم کی باز کرد ط من لازم مش فاعل فصائل مفصل توديد ب... ب... دومين مرفوع نائب فاعل هست المفعول الذي لم يسمى فاعله مفعول كه فاعل فائل فاعل شو نام عند الاذا فعل بشكل مجهول هست وهو نائب فاعل الاسم المرفوع اسم مرفوعي هست الذي لم يذكر ما هو فاعله که همراه اون فائلش ذکر نشده. به این مثال دقت بفرمایید فتح علی یون الباب. در این مثال علی فاعل هست الباب مفعول بیه هست، فائل ذکر شده. حالا اگر میخوایم فاعائل رو حذف کنیم فعل و به شکل مجول بکار داریمیم فتح البابو. بس باب میشه نائب به فائل میگه اسم مفهوع است که فاعائلش باش ذکر نشده. ولی بعد از اینکه ما فائل رو میکنیم تغییر میاریم فعل و از معلوم مجهول میکنیم هم در ماضی هم در مزارع حالا اول ماضی رو توضیح میده بعدش مزارع رو به چه شکل مجهول میشن فه انکانا الفیل ماضی اگر فعل ماضی بود دم اوله، اولش رو زمه میدهند و کسر ما قبل آخره ما قبل آخرش کسره داده میشه زرعبه میشه دو ری به این در در مجرد هست مزید هم ما قبل آخرو کسر میدیم، مثلا استخدمه. ما قبل آخرش دال هست، آخرش که ما بیای تغییری بشن میدیم، استخدمه. ما قبل آخرش رو کسر میدیم، استخدمه دارو کسر میدیم. ما قبلش اونایی که حرکت دارن بشن زممه میدیم، اونایی که حرکت دارن بشن چی میدیم؟ میشه استخ دیمه، استخ در باب فعاله. علف تبدیل بواب میشه مثلا قاتله میشه قوتله در باب التفاؤل هم تونین تو تقوتله مازی و امکانم مدارعا دمه اولو در مزاره اولی رو یا حرف مزاره رو زمه میدیم و فتح ما قبل آخره برعکس ما قبل آخره فتحه میدیم در می میگفتیم زوریبه در یزربه میگیم یزربه ما قبل رو چه میدیم فتحه میدیم در یز تخدمه میگیم یزربه تخ دمو این هم از مزیدش پس این بود نائب فائل هر فعل مجهولی نائب فائل داره همان که هر فعل معلومی فائل داشت مانند حفظه علی الدرسه حفظ کرد علی درس را حفظه, حفظة الدرس نصر الله المؤمنین نصر الله مؤمننا الله فائل المؤمنيننا مفول بهه. ف که حس بشه دیگه مفول به میاد جای فائل و میگیره ارا فائلل و میگیره. ببین در این مسال نصر الله المؤمنين الله مرحوب المؤمنيننا منصوبه. بعد از اینکه الله ح کردیم فعل و کردیم کردی المؤمين مرحومشه. میشه نصررا مؤمنون نصرال مؤمنون این نقط هم در ذهن ها باشد. اقسام نائب فائل همان که فائل ظاهر بود و مزمر خمسد ناسا نائب فائل هم هست و هو على قسمين نائب فائل بر قسم هست ظاهر و مزمر یک ظاهر دو مزمر فالظاهر نحو قولك ظاهر معنم ده بوری بزیدون زید زده شد فائل حس حس یا یدربو زیدون با فیل او اکرم عمر امر اکرام شد یکرم عمر امر اکرام می شود این بود مثال برای اسم ظاهر در احکامات دیگه مثل فائل هست همان طور که اگر فائل اسم ظاهر بود فعل مفرد بکار می رفت در نائب فائل هم اینجوری است. ببین نصر, نصر زیدانی نصر زیدون متوجه شدی آقای استاد خب بریم جلوتر 12 زمیر هم 40 تا هست نحو قول کمانده درب تو درب نه چرا؟ چار نگفته 40 گفته دوازده چون زرب تو ما که تو ما زمیره این دیگه سه تکرار میشه تکراری شو نگفته تکراری شو وگرنه زمیر 40 تا همشون هم زمیر میتونن داشته باشن. گرچه مال زرابه و زرابت یعنی مال مفرد مذکر غایب و مفرد مهندس غایب میتونه زمیر مستتر باشه و میتونه اسم ظاهر باشه فائلش یا نائب فائلش و وزمی... مانند ضرب تو، اینجا چون فعل مجهول تو میشه نائب فایل. دربنا نا دربتا تا دربتی دربتو ما دربتون دربتون نه دورب، و ضربت و ضربا و دربو و نه. خب اینا دیگه واضح هست زمیرهای که اومده در این فعل زمیرهای بارز زمیر بارز همیشه اگر فعل معلوم بود فاعل و اگر فعل مشغول بود نائب فائل هستند زمیرهای مستتر هم همچنین پس چیز خاصی نداشت با توجه به این که در قسمت فائل خوندیم اما مرفوع چهارم و پنجم مبتدا و خبر المبتدا هو الاسم المرفوع اسم مرفوعی هست العاری از عوامل لفظیه که عامل لفظی نداره عاری هست از عوامل لفظی از عوامل لفظی خالی هست یعنی عامل لفظی نداره شو اینجا دقت کنید ان زیدا آلمون اجازه زیدن عامل لفظی داره این نه سبب شده که زیدن منصوب بشه ولی در مثال خود زیدن آلمون چی چیزی اومده زیدن رو مرفوع کرده؟ میگیم عامل لفظی وجود نداره پس اسم المرفوع العاری عنه عوامل لفظیه آمل لفظی نداره و الخبر خبر رو همه منجا توضیح میده هو الاسم المرفوعو المسندو اله اسم مرفوع هست مسند اله هست خبر میشه مسند میشه به سمت مبتدا. لذا مبتدار میگند موسند و مبتدار میشه موسند اله و خبر میشه چی؟ موسند کتابش رو چی نوشته؟ بله این الهی به سمت مبتدا بر میگرده. پس هو اسم مرفوع الموع. خبر اسم مرفوع هست مثند هست. عله به سمت سمت مبتدا. پس خبر مثند هست به سمت مبتدا آنند محمد فاضل محمد عالمون محمد عالم هست محمد میشه مسند ایله عالم میشه مسند خبر مسند شده برای مبتدا همانطور که در بحث فعل و فائل فعل مسند میشه به سمت فائل. نحو قولت مانند زیدون قائمون زیدون قائمون زید میگی مبتدا مرفوب آزمه قائمان خبر مرفوب آزمه از زیدانی قائمانی از زیدانی مبتدا مرفوب الف قائمانی خبر مرفوب الف از زیدون قائمونه مبتدا مرفوب واق قائمونه خبر مرفوب واق این تکرارا رو خاطری نه که به دانشاموز به طالب به که مبتدا مفرد با با علامتی دیگر مرفوع میشه مسند با علامتی دیگر و جمع با علامتی دیگر وگرنه هر سمثال زید مبتدا و کلمه بعدیش خبرش هست پس مبتدا و خبر بحثی بود بسیار بسیار ساده ببین ما دو جمله داریم جمله اسمی داریم و جمله فعلیه در جمله فعلیه ما فعل و فاعل داریم یا اگر فیل مجزو بود، فیل به اضافه نام فایل داریم و جمله اسمی در جمله اسمی ما مبتدا خبر داریم. همانطور که هر فیل فایلی دارد، هر مبتدا هم خبری دارد. حالا اینکه ذکر شده باشد یا حس شده بودیم، مسئله جدا. مبتدا و المبتدا مبتدا خودش بر دو قسمت ظاهر و موجب ظاهر و موجب. فظاهر ما تقدم ذکر ظاهر وياتي مثال شو زاد مين مانند زيد قائما والمضمر 12 مضمر هم 12 تميشون هنيك مبتدا وفعيل شو وهي عباره عن انا نحن انت انتي انتما انتم انتن هو هي هما هم هن نحن قولك بالام دي مثال انا قائمون در اعراب انا قائمون نجيب انا مبتدا مرفوع محلل مرفوع كل ضمائر هستند و ایراب مبنی ها محلی هست و نحن قائمون نحن میگیم مبتدا محلی مرفو قائمون خبرش مرفوع با واو انا قائمون هم قائمون که خبرش بود انتم قائمون انتم میشه مبتدا محلی مرفو قائمون خبر معطوف با پس اینجا با بحث مبتدار رو خوندیم که میتونه از ظاهر باشه معننده زیدون جالسون و میتونه زمیر باشه هو جالسون هو میگیم مبتدا محلن برخور جالسون خبر با زمه و الخبر بود کسم خبر هم بر دو قسمه مبتدا بر دو قسم بود یا اسم ظاهر بود یا زمیر و خبر هم بر دو قسمه مفرد و غیر مفرد خبر مفرد و خبر غیر مفرد فالمفرد نحو زید القائم مفرد ما مانند زید القائم قائم م... منظور از مفرد منظورش ش و جمع نیست منظور از مفرد این که شبه جمله و جمله نباشه ما خبر بر گنا داریم یکی اون که مفرد باشه منظور از مفرد این که شبه جمله و جمله نباشه مانند زید قائمون بس خبر مفرد مانند زیدون قائبون قائبون یک کلمه هست دیگه یا زیدون قائبون از زیدون قائبون از زیدون قائبون قائمون هم خبر مفرد هست شر جمله و جمله نیست و غیر مفردی اربعه تو اشیار خبر غیر مفرد چهار چیز میکره باشه و خبر یک مفرد بود دو غیر مفرد و غیر مفرد چهار چیز میکره باشه یک الجار والمجرور دو و خبری که ضرح هست و الفعل و معفاقه خبری که فعل بطائلش است یعنی جمله فعلیه و المبتد و مع خبره خبری که خودش یک جمله اسمی هست نحو ماننده در این ها متوجه خواهی شد قول ایک زیدون اینجا بگیم زید مبتده فیداری خبر هست خب فدار مفرد یا غیر مفرد غیر مفرد است. از کردن او از نوع جارو مجبورش. زدون اندک، زد میگی مبتدا اندکه اندازارح است. خبر ما هست از نوع زارح است. پس جارو مجبور وزارت از شره جمله اند. زدون قام ابوه، زدون میگیم مبتدا قام فیلمازی ابو فاعلش هست. همو زاتون الیف قام ابوه خودش یک جمله است. پس زدون خبرش کجاست؟ میگیم زدون که مبتدا است. قام ابو في یک جمله است دوباره کلش میشه خبره ولی چون خبر اینجا جمله است میگیم محلن داریم میگیم چی محلن داریم و زید اینجا میگیم تو خودش یک جمله است تو مبدا خوب مذاکره ليش خبره پس خبر زید کجا راست؟ میدیم جاریتی ها تون که یک جمله اسمی هست خبر زید هست محلن مرخوب پس گفته بود خبر بردونو هست یا مفرد منظور از مفرد این است که جمله و شرح جمله نباشه منظورش این نیست که مسننا و جمع نباشه دو خبر غیر مفرد خبر غیر مفرد خودش بردونو بود جمله و شرح جمله جمله یا جمله اسمیه یا جمله تیلیه مانند دومثال آخری و شرح جمله خودش بردونه هست جار و مجرور و ذرف جار و مجرور و ذرف شرح جمله هستن چه هستن؟ مانند زیدون فدار الكتاب فوق المنزده الكتابو وا اعراب الجمله وشرح الجمله هم محلل حديث متواجد جديد قبلين درس بعدي واحد عشان دي واحد حرف ما فساين ده كفائل قندين نائب فاعل قندين مبتدا قندين خبر قندين رسيدين ببين بهتر مطل خبر نواصف میاد چی میان؟ یعنی ایرا مفتدا و و خبرو تغییر می داند زیدون آلمون این زیدان آلمون کان زیدون آلمه و اخواتش کانه و اخواتش به اینا میگن نواسخ. که بر سر مبتده و خبر میاند باب الاوامل على الان المبتدهی والخبر اون اواملی که بر سر مبتده و خبر میان. و هی ثلاثت اشیا نواسخ سه چیز می باشد کانه و اخواتها اخواتها یک کانا و اخواتش انوا اخواتها انوا اخواتش س و ظننتوا اخواتوا و اخواتش اینا بنظر چی میاد مبتدا و خبر میاد اول کانوا و اخواتها فاما کانا و اخواتها بیجا اما کانا و اخواتها فانه ترفع الاسم را مرکوب کنند و تنصب خبر و خبر را منصوب می کنند دیگه و بعد وقتی که متردد خبر رو بدن نمیگیم مبتدا و خبر بلکه میگیم اسم کانا و خبره كان اسمشون ربط يكون و خبرها منفوب وهي عباره الاس كان و امسى واسبها وابحى و ظل و بات و صار و ليس زال ومنفك و وما فتئ و وما, وما, وما تصرف منها وحرأ امشكي ادينا متصرف بشي يعني مضارع يعني امر نحن كاد و يكون سویم کان زیدون آلمان یکونو زیدون آلمان کن آلمان کن آلمان در کن آلمان کن میدیم قیل ناقصه انتا اسمش محلن مرفو مستطر وجودی آلمان خبر مرفو منصوب بافته اصبحا یسبح و اسبح و باقیه که البته اینا دوباره بر چند قسم میشند؟ بعضی از اینا که متصرف نیستن بعضی ها تصرف کامل میشن بعضی تصرف ناقص میشن بعضی از اینا اصلا صرف نمیشن مثلا کانه کاملا متصرف هست هم ماضی داره هم مزاره داره و هم امر داره حفظی‌هایی که نامورین متصرف کامل هستند کانه امسا اسبها ابها و له باته و سارا بعضی از اینا متصرف ناقص هستند یعنی چی یعنی اگر ماضی داره و مزارع داره امر نداره اونایی که ماضی و مزارع دارن امر ندارن چهار هستن. هستن ختیئه انفک برح و ظاله ماضی دارن مثلا ظاله ی ظالم مزارع دارن اما امر ندارن و قسم شبون اونه که متصرف نیستن که اونا دو فیقه فیل هستن یکی لیسا که به اتفاق نحوی ها این مزاره و عمر نداره لذا متصرف نیست و یکی دامه هست که لطین در نظر نحوی ها مرده اختلاح هست پس و تقول و مانند کان زیدون آلمان کانه میگه فیل ناقصه اسمش مرخوب و قائما قائمان خبرش منصوب بافته مثال دیگه و امرون شاخصن لیسه از اخوات کانه امرون اسمش مرخوب و زمه خبرش و ما اشبه هزالد و امثال این چیز پس موقعی که کانه و اخواتش سر مبتدا و خبر بیاین مبتدا رو از مبتدا بودن به در میاره و اسمش قرار میگیره لذا مبتدا در اصل مرکو بود ولی این رفی الان یک رفع جدیده یک رفع چیه؟ بله دیگه از معنایی اسم رو اه اه اسم رو متصف به خبرش میکنه در زمان گذشته موقعی میگیم کان زیدون عالمان، یعنی زید عالم بود در گذشته پس اسم رو که زیدون باشه متصفش کرد به عالم بودن در ماضی در گذشته کان زیدون جانشن زید نشسته بود زید رو متصف به کرد در گذشته این الهاز معنایی هست امسا که خود اسم رو متصف به خبر میکنه در, زم... در در امسا در مسا موقع میگیم امسل جو باردن جو اسم امسا هست باردن خبرش هست جو متصف به سردی کله در وقت چی؟ در مسا پس ترکیبشون این که امسا از اخوات کالا الجو اسمش مرفو باز زمه باردن خبرش هست اللحاید معنایی امسا اسم رو متصفه به خبر میکنه در مسا. اسبحه در صبح، ازها در وقت بحا، وظله در تمام روز. موقعی که میگیم ظله و جهو مصودن، گشت چهره سیاه در تمام روز، با تا که هم در وقت شب، سارا که هم به معنی گردیدن از حالتی به حالت دیگر. اینا لازمه معنای بودن مهمترین افعال ناقصه ای که اینجا وجود داشتند الا هذا متصرف بودن بر چند نبودن برسل اولایی که متصرف کامل بودند یعنی هم ماضی داشتن هم مزاره هم امر نام بردیم اولایی که متصرف ناقص بودند یعنی ماضی و مزاره داشتن امر نداشتند و اولایی که اصلا متصرف نبودند اما ان و اخواتش اما چه ان و اخواتش. سأجندت أما انه اخواتها فانها تنسب الاسم وترفع الخبر انه اخوات اش برعكس اسم رب منصوب نيجرنان وخبر مرفوع وهي ادارتنا انه ان ولكن وان وكان وليت ولعل كيش دا حسن تقول ما نند ان زيدا قائمون نجيم ان حرف مشبه بالفعل زیدان اسمش منصوب با فتح قائمون خبرش مرفوع با این ان الزیدین قائمان اگر مصدوم مثال بیاوریم میگیم ان حرف مشبهه از زیدنی اسمش منصوب با یا قائمانی خبر مرفوع با الف ولت امران شاخصن لتا از اخوات ان امر اسمش منصوب با فتح شخصون خبرش و ما اشبه ذلك و امسوا وا ومعنى ان و ان خدش خودش معنای اینا رو بیان میکنه أن ان و ان برای تاکید به کار می روند برای توكيد به کار می روند مثلا ان زید ان زید عالم قسن زید عالم است میخو برای مخاطب تاکید کنی از لاکن نه اینی که این چه زمانی بکار میبریم این چه زمانی بکار میبریم در کتب دیگه مفصلان آورده جاهایی که ان نه بکار میکنی جاهایی که ان نه بکار میکنی الله از معنایی هیچ فرقی ندارد فقط فرقشون اینه که در کجا جمله واقع بشه در ابتدا مثلا نوید بود این نه بکار میکنی ان نه زایدان بود خب که در کتاب دیگه مفصل میاره بعدا میگه اینا در تأکید دلالت میکنن لکن به معنی استدراك هست. موقعی که ابتدا یک سخنی میگی شاید یک وهمی در ذهن شنونده بیاد بعد از اون با لاکه نمیای اون وهم رو از ذهن نمیدری ما مانند محمد شجاعون, شجاعون محمد شجاع است لکن صدیقه جبانون اما دوستش تر خو است پس لاکه برای استدراک که خوب از درک میاد یعنی در که طرف مقابله چه کار میکنی؟ تصحیح میکنی وحبشو از بین میبریم و کعنه کعنه لتشبیح کعنه برای تشبیح بکنید کعنه برای چی بکار بوده؟ کعنه زیدان اسدان گویا که زید چه شیرها، کان محمدان بادر، محمدش هست، بادرش محمد هست،, هست. ما هشدار داده. ولی تل التمنی، لیتل رای التمنا برای آرزوهای خیلی سخت هستند یا محال هستند کار میره لیتل شباب یعود یا مر، کاش که جوانی بوزی بر بگرده که برگشتنی نیست. ولعل للترجي برای ترجی و توقع بکار میره ترجی یعنی خاصه چیزی که محبوب باشه و این در امور ممکن هست و در امور چی هست ماننده لعل الله یرحمونی اما توقع گفته بود لیم ترجی و توقع ترجی برای امر محبوب هست و ترجی انتظار توقع ترجی رو گفتین از من رجامیت توقع انتظار امری که اون امر چه هست تسندیده نیست مانند مثالی که خوده محمد محي الدين عبد الحميد الله رحمه لعل الأدو قریب منه لعل الأدو قریب منه فصیح بود از این و اخواتش این و اخواتش اسم را منسوب بیگردن و خبر را مرفوو ما ندید این زید آلیم این زیدن آلیم این الزیدینی آلیمانی این الزیدیلا آلیمونه این آباقا آلیمون ان للمسلمات عالمات برای هر نوعی از اسمهای مورر مثالی آوردیم این هم از دومین نواسخی بود که بر سر مبتدا و خبر می آمد و علیکم السلام اما ناسخ سوم و اما و اما ناسخ سوم که بر سر مبتدا و خبر می آمد و اعرابشون تغییر میداد و اما زننتو و اخواتها و لن و اخواتها اذا و و اخواتش و اما ظنته و اخواتها فانها تنسب المبتدا والخبر لجه ظن و اخواتش مبتدا و منصوب میکنن والخبر و الخبر و خبرها منصوب میکنن ببین کانه و اخواتش اسم را مرفوع میکردن خبر را منصوب انا و اخواتش اسم را منصوب میکردن خبر را مرفوع و و اخواتش هم اسم رو مرفوع میکنن و, و هم یعنی هم مبتدا رو منصوب میکنن و هم خبر را اون موقع که نمیگییم مبتدا خبر بلکه میگیم میگییم مفول اول و مفول دوم. ال انهما مفولاتی نه منصوبشون میکنن بر این اساس که مفهول دو مقول شصاب میشن. چش سا میشن؟ و عبارت عبارتند تو حسب تو خلتتو زعم تو رئی تو علم تو وجد تو اتخ تو جعل تو این فعل دو مفولی ما هم تو زدن قالون. زنان تو میگیم از افعال قلوب اینا افعال قلوب هم میگن یا زننه و اخوات تش زیدن میگیم مفعول اول قائمان مفعول دوفا رأی تو امران شاخصا رأی تو با فائلش از اخوات زنه زن هست امران میگیم مفئول اول شخصا مفئول دوم و معاش به هداله و که شبیه اینها باشد پس سومین قسم از نواسخ ذنه و اخواتش بودن اونایی که در عمل کردن مثل ذنه هستند اینها ها مبتدار رو به عنوان مفئول اول منصوب میکنند و خبر رو به عنوان مفئول دوم که اینا ده بودن همه رو خوندیم براي اي هن اي مثال كل همشه شبيه هم عملي كن ولي علم اتخذ الله ابراهيم خليلا در قران المثال قاير مثال مزنين م... اتخذه مش از افعال قلوب الله مش فاعل ابراهيم مفعول اول خليلا هم مفعوله دوام يا رعیت و زیدن زید را آلم دیدم زید را چی دیدم؟ که البته اللحا در معنایی با هم دیگه چه هستند؟ متفاوت هستند ولی ما دیگه زیاد وارده بحث نمی به خاطر این که تمام درس رو در همین یک جلسه تموم کنیم. درس بعدی رو میخوییم. توابه هستن. درس بعدی که هستن؟ پس اینه و اخواتش رو خوندیم. کانه و اخواتش رو خوندیم. زنه و اخواتش رو خوندیم. رسیدیم به توابه. چون خوندیم. آنچه که توابه باشد. خودش هم که هست؟ است. هست. و اونا چهار که بودن. اولی النعت. باب النعت. الن یا همون صفت تابعه موصوف هست در چند چیز فی رفعه و نصبه و خفضه در رفعه و نصب و خفض جا رجلن کریمن رأیتو رجلان کریمن مررت به رجلن کریمن موصوف که مرخوب باشه این مرخوب میشه موصوف که منصوب باشه نعت منصوب میشه و منعود که مجرور باشه نه هم چی میشه؟ میشه و دیگه در چه مثل منعود هست؟ نعت وتعريفه وتنكيره ودر معرفه ونكره جاء الرجل الكريم جاء الرجل الكريم جاء رجل كريم اون که نکره باشه مفعول که نکره باشه ندهم خودش قام زيد العاقل چون زيد هم معرفه كل زيد مرفوع العاقل هم ايش؟ مرفوع است رأيت قام لجفال زي دون فاعل العاقل نعتش است رأيت فعل با فاعل زيدا مفعول به العاقلا واسى زيدان كل ما زيدان مفعولا ثم منصوب فنعتهم منصوب است در مثال سلومي مررت بزيد العاقل زيد مجرور است العاقل هم مدروه هست در معرفه و نکره هم هر دو طبعه اینهی چه هستند؟ مطابقت دارند. پس در ایرام و تعریف و تنکیر با هم چی دارند؟ ناتو مطابقت دارند. از اون جایی که بحث نکره و معرفه پیشونه درس بعدی رو در مورد معرفه و نکره آورده و المعرفه خمسه اشیاء خب اینو ان الله در جلسه بعدی خواهیم خواند